باید بهتون گفت که هیپنوتیزم در گذشته شما هم بسیار رایج بوده شما بارها هیپنوتیزم شدید یا دیگران رو هیپنوتیزم کردید و های خیلی زیادی درباره این موضوع میتونم بگم و به عنوان مثال زمانی که شما عاشق کسی شدید در واقع شما هیپنوتیزم شدید وقتی عاشق یک کسی میشید ذهنتون کاملا درگیر اون میشه، دائما به اون فکر میکنید، حس عشق رو تجربه میکنید، یک تجربه‌ای براتون شکل میگیره که متفاوت از تجربه مثلا نفر بغلیتون نسبت به اون آدم خاصه که شما عاشق شدید. این یعنی شما هیپنوتیزم شدید. یا مثال دیگه زمانی که کسی عاشق شما میشه. این دوره که اون آدمی که عاشق شما میشه ممکنه مثلا دوست اون آدم این حس به شما نداشته باشه اما اون آدم این حس به شما داره یعنی در واقع اون آدم مثلا توی تونل واقعیتی وارد شده که تجربهش متفاوت با اطرافیان مثال دیگه یه فردیه که بر اساس حالا شریعتی که براش پیش میاد و اینها یه هو میره به فکر این که خب من باید دیگه خودکشی کنم و میره و خودکشی هم میکنه خیلی هستن یه های محتوی رو میخونن یه کتاب خیلی منفی رو میخونن بعد به خاطر همون کتاب میرن خودکشی میکنن و دوباره علت این که اون آدم میره خودکشی میکنه این هست که هیبنوتیزم شده همه چی براش طوری داره به نظر میاد که انگار فقط باید خودم بکشم که راحت شم از این زندگی. میبینید هیبنو تیز چقدر خطرناک میتونه باشه تا مثال دیگه زمانهایی میتونه باشه که شما توجهتون اونقدر جمعه یه چیزی میشه که به حتی سرعت گذر زمان براتون حس نمیشه مثل کسی که سر کلاس یک کلاسی که خیلی دوست داره به فرض و یهو می بینه که زمان تموم شد آخر کلاسه یا کسی که سری کلاسی یکی که دوست نداره و میبینید انگار زمان واقعا دیر میگذره یعنی دقت کنید گذر زمان که ثابت اما شما تجربتون از اون متفاوت میشه در واقع میشه گفت حال تعریف خواهیم که هپنوتیسم و یه به جور هایی هنر بازی کردن با بازی کردن و تغییر تجربه یکی خودتون یا دیگران در هر لحظه دارید نسبت به همون لحظه نسبت تو یک چیز خاص یا مثلا ممکنه اینو دیده باشید که یه نفری داره تلویزیون میبینه داره یه ورزش که مورد علاقه رو میبینه فوتبال یا کشتی یا هر چیزی و بعد هری صداش میزنید نمیشنوه و واقعا نمیشنوه یعنی توی تونل واقعیتی ابزورب و جذب شده که اصلا چیزی خارج از اون براش وجود خارجی نداره ببینید چقدر جالبه خوب دقت کنید که شما با هیبنوتیزم میتونید چیزهایی رو از پهنای ترجع خودتون یا دیگران خارش کنید و این فوقلاده است و میتونید استفادایی زیادی ازش بکنید و مثالهای خیلی بیشتری میشه زد وقتی شما دارید رانندگی میکنید به فضایی ها میبینید من رسیدم به مقصد از محل کارم تا بخونه چطور شد نمیدونم اصلا یادم نیست چه مسیری اومدم اوتوماتیک انگار شما مسیری اومدم که شما شدید. به عبارت دیگه باید گفت که شما هر لحظه از زندگیتون هر لحظه از روز رو دارید توی یک خلسه، توی یک ترانس توی یک فضای هیبنوتیزمی خاص می کنید و خیلی از مردم حواسشون نیست من مثال دیگه ای به ذهنم رسید کسایی که فوبیا میگیرن نسبت به ارتفاع نسبت به انکبوت نسبت به یه حیوان خاص نسبت به جوجه حتی یه از اصلا از ج از انواع اقسام حیوانات میترسن همه اینها تونل های واقعیت و هیپنوتیزم هایی که انجام شده روی این افراد حالا یا به صورت عمدی یا صحفی معمولا صحفی بوده این خیلی ها هیپنوتیزم میشن بدون اینکه بدونن اصلا هیپنوتیزم شدن و کی اصلا چجوری جوری هیپنوتیزمشون کرده و واسه همینه که میخوام خدمت بگم هیپنوتیزم بسیار رایجه شما ممکن توی بچگی تون شده باشید درباره باورهای مالی و مثلا دیدستون این باشه این باور بازتون تذیه شده باشه رو هیپنوتیزم شده باشید که پول سخت درمیاد و این باور تا انتهای عمرتون بلاهای مالی رو سر شما نازل خواهد کرد از ناخودآگاه خودتون و این نشون میده که چقدر هیپنوتیزم رایجه و چقدر میتونه بلا سر شما نازل کنه و چقدر مهمه که یاد بگیرید هیپنوتیزم چیه که در ادامه این دوره دقیقاً همراه با این موضوعات خواهید بود